مصنوی معنوی مولوی برنامه یک سد و بیان آن که آن چه بیان کرده می شود صورت قصه است و آن که آن صورتی است که در خورده این صورتگیران است. زان که پیلم دید هندوستان به خواب از خراج و مید برد ده شد خراب کیفیت نظم و لی و القافیه بعد مازاعت اصول العافیه ما جنون واحد لی فی شجون بل جنون فی جنون فی جنون زا جسمی من اشارات الکنا منز آین تل بقا فی فنا ای عیاز از اشق تو گشتم چموی ماندم از قصه تو قصه من بگوی بس فسانه عشق تو خواندم خاندم جان تو مرا کفزا نگشتستم، بخان، خود تو می خانی من ای مقتدا، من کوه تورم تو موسا وین صدا، کوه بیچاره چه داند گفت چیست، زان که موسا می بداند کوه تهیست، کوه می داند به قدر خیشتن. اندک دارد ز لطف رو تن. تن چو استرلاب باشد ز احتساب. آیت از روح همچون آفتاب. آن منجم چون نباشد چشم تیز شرط باشد مرد استرلاب ریز. تا سترلابی کند از بحر او تا برد،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 عارفان را سرمه هست آن به جوی تا که دریا گردد این چشم چجوی ذره از عقل و حوش با من است این چه سودا و پریشان گفتن است چونکه که مغز من ز عقل و, و هست، پس گناه من در این تخلیط چیست نه گناه او راست که اقلم بپرد، اقل جمله عاقلان پیشش بمرد. یا مجیر العقل اقل فتان ال ما سوا که للعقول مرتجا مشتهیت العقل اقل مز جننتنی ما تل حسن مز زینتنی. حل جنونی فی هوا ک مستطاب، قلب و والله و یجزی سواب. گر به تازی گوید ور پارسی، گوش و حوش کوک در فهمش رسی، باده او در خور هر هوش نیست، حلقه او سخره هر گوش نیست. بار دیگر آمدم دیوان بار رو رو ای جان زود زنجیر بیار غیر آن زنجیر زلف دلبرم گر 200 زنجیر آری بردرم حکمت نظر کردن در چارق و پوستین که فلین زور الانسان و مم خلقه بازگردان قصه عشق عیاز کن یکی گنج است مالا مال راز می رود هر روز در حجره برین تا ببیند بی چارق با پوستین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 او كجا بود اندر آن که من صدر عالم بودم و فخر زمن خلق الجان من مارجن من نار و قوله تعالی فی حق ابلیس انه کان من الجن شعله شغله می زد آتش جان صفی کاتشی بود الولد سر رو عبی نی غلط گفتم که بود قهر خدا علتی را پیش آوردن چرا؟ کار بی علت مبررا از علل مستمر و مستقر است از عزل در کمال سنع پاک مستحس علت حادث چ گنجد یا هدس سر اب چه بود؟ اب ما سن اوست سنع مغز است و اب صورت چپوست. پوست عشق دان ای فندق تن دوستت جانت جوید مغز و کوبد پوستت دوزخی که پوست باشد دوستش داد بدلنا جلودن پوستش معنی و مغزت براتش حاکم است لیک آتش را قشورت هیزم است کوزه چوبین که در وای آب جوست قدرت آتش همه بر ظرف اوست. معنی انسان بر آتش مالک است. مالک دوزخ در او کی حالک است. پس میفزا تو بدن، معنی فزا. تا چو مالک باشی آتش را کیا. پوست ها بر پست می لاجرم لا جرم چون پست اندر دوده ای زان که آتش را علف جز پست نیست قهر حق آن کبر را پوستین کنیست این تکبر از نتیجه پست است و مال آن کبر را زان دوست است این تکبر چیست؟ غفلت از لباب منجمد چون غفلت یخ زافتاب، چون خبر شد زافتابش یخ نماند، نرم گشت و گرم گشت و تیز راند، شد زدید لب جمله تن تما، خار و آشق شد که زل من تما، چون نبیند مغز قانع شد به پوست. بند از زمن قنع زندان اوست عزت اینجا گبری است و زل دین سنگ تا فانی نشد کهی شد نگین در مقام سنگی آنگاهی انا وقت مسکین گشتن توست و فنا کبر زانجوید زنجوید همیشه و مال که ز سرگین است گلخن را کمال کیند دو دایه پوست را افزون کنند شهم و لحم و کبر و نخوت آگنند دیده را بر لب لب نفراشتند پوست را زان روی لب پنداشتند پیشوا ابلیس بود این راه را کو شکار آمد شبیکه جاه را مال چون مار است و آن جاه سایه مردان زمرد این درا زان زمرد مار را دیده جهد کور گردد مار و ره رو چون بر این ره خار بنهاد آن رئیس هر که خست او گفت لعنت بر بلیس، یعنی این غم بر من از غدر وی است. غدر را آن مقتدا سابق پی بعد از او خود قرن بر قرن آمدند، جملگان بر سنت او پازدند. هر که حد سنت بد ای تا درفتد بعد او خلق از اما جمع گردد بروی آن جمله بزه کو سری بودست و ایشان دمغازه. لیک آدم چارق و آن پوستین پیش می آورد که هستم زتین چون عیاز آن چارقش مورود بود. لاجرم او عاقبت محمود بود هست مطلق کارساز نیستی نیستیست کارگاه هست کن جز نیست چیست برنوشته هیچ بنویسد کسی یا نهاله کارد اندر مغرسی کاغذ جوید که آن بنوشته نیست تخم کارد موضعی که کشته نیست تو برادر موضع ناکشته باش کاغذ اسپید نابنوشته باش تا مشرف گردی از نون و القلم تا بکارد در تو تخمان زلکرم خود از این پالوده نالیسیدهگیر مطبخی که دیدهیای نادیدگیر زانک از این پالوده ها بود. پوستین و چارق از یادت رود. چون در آید نز و مرگ آهی کنی. ذکر دلق و چارق آنگاهی کنی. تا نمانی غرق موج زشتی که نباشد از پناه پشتی. یاد ناری از سفینه راستین. ننگری در چارق و در پستین چونکه درمانی به غرقاب فنا پس زلم ناورد سازی بر ولا. دیو گوید بنگرید این خام را سر برید این مرغ بی هنگام را دور این خسلت ز فرهنگ که پدید آید نمازش بی نماز او خروس آسمان بود از پیش، نعره او همه در وقت خیش. در معنی این که ارنال کماهیه و معنی این که لوکش ما از ده تو و قولهو در هر که تو از دیدای بد مینگری، از چند برای وجود خود مینگری. نگری. پایه کژ افغانت سایه. ای خروسان از وی آموزید بانگ، بانگ بحر حق کند، نه بحر دانگ صبح کاذب آید و نفری بدش صبح کاذب عالم و نیک و بدش اهل دنیا عقل ناقص داشتند تا که صبح صادقش پنداشتند صبح کاذب کاروانها را زده است که ببوی روز بیرون آمده است صبح کاذب خلق را رهبر مباد کودهت بس کاروانها را بباد ای شده تو صبح کاذب را رهین صبح صادق را تو کاذب هم مبین گر نداری از نفاق و بد امان از چه داری بر برادر زن همان؟ بدگمان باشد همیشه کار، نامه خود خاند اندر حق یار آن خسان که در کجی ها مانده اند انبیا را ساهر و کژ خواندند. اند ون امیران خسیس قلب ساز این گمان بردند بر حجره عیاز، کودفینه دارد و گنج اندران، آن زاین خود من در دیگران شاه میدانست است خود پاکی او بحر ایشان کرد او آن جست جو که امیر آن حجره را بکشای در نیم شب که باشد و زان بی خبر تا پدید آیت سگالش های او بعد از آن بر ماست مالش های او مر شما را دادم آن زر و من از آن زرها نخواهم جز خبر این همه گفت و دل او می تپید از برای آن عیاز بی ندید. که منم کین این بر زبانم می رود این جفا گر بشنود او چون شود. باز می گوید به حق دین او که از این افزون بود تمکین او کی با قصف زشت من تیره شود، و از غرز و سر من غافل بود. مبتلا چون دید تعویلات رنج، برد بیند کی شود او مات رنج. صاحب تعویل عیاز صبر است، کو با بحر ها ناظر است، همچو یوسف خواب این زندانیان هست تعبیرش به پیش او عیان خواب خود را چون نداند مرد خیر کو بود واقف ز سر خواب غیر گرزنم س تیغ او را زمتحان کم نگردد وصلت آن مهربان داندو كانتیغ بر خود میزنم من ویم اندر حقیقت او منم بیان اتحاد عاشق و معشوق از روی حقیقت اگرچه متضادند از روی آنکه نیاز ضد بینازی است چنانکه آینه بی صورت است و ساده است و بی صورتی ضد صورت است ولاکن میان ایشان اتحاد است در حقیقت که شرح آن دراز است والعاقل و یک فیل اشاره. جسم مجنون را زرنج و دوریه، اندر آمد ناگهان رنجوریه. خون به جوش آمد ز اشتیاق، تا پدید آمد بر آن مجنون خناق. پس طبیب آمد به دارو کردنش، گفت چاره نیست هیچ از رگزنش، رگزدن باید برای دفع خون رگزن آمد و آنجا زوفنون بازوش بستو و گرفتان نیش او بانگ برزد در زمان آن عشق خو مزد خود بستان و ترک فست کن گر بمیرم گو برو جسم کهان گفت آخر از چه می ترسی از این چون نمی ترسی تو از شیر ارین شیر و گرگ و خرس و هر گور و دده گرد بر گرد تو شب گرد آمده. مینه آیدشان ز تو بوی بشر زنبوهی عشق و وجد اندر چگر گرگ و خرس و شیر داند عشق چیست؟ کمز سگ باشد که از عشق او امیست. گر رگ عشقی نبودی کلب را، کی بجستی کلب کهفی قلب را. همز جنس او به صورت چون سگان، گر نشد مشهور هستن در جهان. بو نبردی تو دلن در جنس خیش، کی بری تو بوی دل از گرگ و میش؟ گر نبودی عشق، هستی کی بودی، کی زدی نان بر تو و کی تو شدی؟ نان تو شد از چه؟ ز عشق و اشتهی، ورنه نان را کی بودی تا جان رهی؟ عشق نان مرده را میجان کند، جان که فانی بود جاویدان کند، گفت مجنون من نمی ترسم زنیش صبر من از کوه سنگین است بیش من بلم بی زخم ناساید تنم آشقم بر زخم ها برمی تنم لیک از لیلی وجود من پر است این صدف پر از صفات آن دور است ترسمای فساد گر فسدم کنی نیش را ناگاه بر لیلی زنی داندان اقلی که او دل است در میان لیلی و من فرق نیست معشوق از عاشق پرسید که خود را دوست ترداری یا مرا گفت من از خود مردم و به تو ام. هر که را آینه یقین باشد، گرچه خود بین خدای بین باشد. <تصفيق> گفت معشوق به عاشق زمتهان در سبوهی که فلان ابن فلان مرمرا تو دوستر داری عجب یا که خود را راست گو یا زل قرب. گفت من در تو چنان فانی شدم که پرم من از تو از سر تا قدم بر من از هستی من جز نام نیست در وجودم جز تو ای خوشکام نیست زان سبب فانی شدم من این چونین همچو سرکه در تو بحر انگبین همچو سنگ کوشوت کل لعل ناب پر شود او از صفات آفتاب وصف آن سنگی نماند اندرو پرشوت از وصف خور او پشت رو بعد از آن گر دوست دارد خیش را دوستی خور بود آن ای فتا ورکه خور را دوست دارد او بجان دوستی خیش باشد بیگمان خواه خود را دوست دارد لال ناب خواه تا او دوست دارد آفتاب اندر این دو دوستی خود فرق نیست هر دو جانب جزیای شرق نیست تا نشد اولال خود را دشمن است زان که یک من نیست آنجا دو من است زان که ظلمانیست سنگ و روز کور هست ظلمانی حقیقت ضد نور خیشتن را دوست دارد کافر است، زن که او منناع شمس اکبر است، پس نشاید که بگوید سنگ انا، او همه تاریکی است و در فنا. گفت فرعون انالحق گشت پست، گفت منصور انالحق برست، آن انا را لعنت الله در عقب، وین انا را رحمت الله ای محب، زان که او سنگ سیاه بود، این عقیق، آن عدوی نور بود و این عشیق. این انا هو بود در سر ای فضول اتحاد نور، نظرای حلول جهد کن تا سنگیت کمتر شود تا بلالی سنگ تو انور شود صبر کن اندر جهاد و در عنا دم بدم میبین بین بقا اندر فنا وصف سنگی هر زمان کم می شود وصف لالی در تو محکم می شود. وصف هستی می رود از وصف مستی می فضاید در سرت سمع شو یک بارگی تو گوشوار تازه لال یابی گوشوار. همچو چهکن خاک میکن گرکسی زینتن خاکی که در آب رسی. گر رسد جذبه خدا، آب معین چاه ناکنده بجوشد از زمین. کار می کن تو بگوش آن مباش، اندکاندک اندک خاک چهرا می تراش. هر که رنج دید گنج شد پدید، هر که کرد کرد در جده رسید گفت پیغامبر رکو است و سجود بر در حق کوفتن حلقه وجود حلقه آن در هر میزند، کو می بحر او دولت سر بیرون کند